هولوحش ساعت پنج سه ماشینی که تاشی کننده بودیم به قبرستان رسیدیم و زیر باران ریز و تند کنار در خروجی ایستادیم جلوی همه ماشین سیاه و خیس نشکش بود بعد ماشین لیموزین بود که من و کشیش و آقای گتس در آن بودیم و کمی عقبتر هم ماشین استیشنی قرار داشت که در آن چهار پنج خدمتکار و یک مأمور پست از وست اگ بودند. هنگامی که می‌خواستیم وارد قبرستان شویم صدای ترمز یک ماشین دیگر را شنیدم و بعد صدای شلپ شلپ راه رفتن کسی بر زمین خیس. همان مرد عینک جغدی بود که او را سه ماه پیش یک شب مات و مپوت در کتابخانه گادزبی دیده بودم. از آن شب به بعد دیگر ندیدمش. نمیدانم چطور از مراسم خبردار شده بود. حتی اسمش را هم نمی‌دانستم. باران از عینکش میچکید. چکید. آن را در و پاک کرد تا بتواند برداشتن حفاظ برزنتی را از روی قبر گتسبی تماشا کند. سعی کردم به گتسبی بی فکر کنم اما خیلی از من دور شده بود. بدون هیچ ناراحتی یادم افتاد که دیزی یک پیام تسلیت یا یک شاخ گل هم نفرستاده. صدای ضعیفی به گوشم خورد که می گفت امورزش برای مردگانی که باران بر آنها میبارد و بعد مرد اینک جغدی با صدایی رسا گفت آمین زیر باران دوان دوان آمدیم سمت ماشین ها. مرد اینک جغدی کنار دروازه به من گفت نتونستم خودم را به خونه برسونم هیچ کس نتونست جا خورد جدی؟ خدای من ست تا ست تا خونش؟ دوباره عینکش را برداشت و پاک کرد از تو و بیرون گفت طول سگ بدبخت یکی از زنده ترین های من برگشتن به غرب از مدرسه شبان روزی و بعد برگشتن از کالج برای کریسمس بود کسانی که مسیرشان از شیکاگو دورتر بود ساعت شش عصر یک روز دسامبر در ایستگاه قدیمی و سوت و کور یونیون جمع می شدند چند نفر از بچه های شیکاگو هم بودند همگی چنان غرق شادی تعطیلات بودند که هول هلکی خداحافظی می کردند. پالتوپوست دخترهایی را به یاد دارم که از مدرسه خانوم فلان و خانوم بهمان برمیگشتند و با نفسهای یخزده ور ور حرف می زدند. یادم می آید که وقتی آشنایی قدیمی می دیدیم چطور دستهایمان را برای اشتکان می دادیم و چشم هم چشمی دعوتها. دارین می رین پیش اردوی ها، هرسی ها، و بلیت سبز درازی که سفت کف دست های دستگشدار من می گرفتیم. و دست آخر، واگون های زرد پررنگ راه آهن شیکاگو میلوکی و سنت پول که روی ریل کنار درهای ورود و خروج شاد و قبراغ ایستاده بودند، مثل خود کریسمس وقتی از ایسکا وارد شب زمستانی می شدیم، برف درست و حسابی از آن برف‌های خودمان می‌وارید و کنارمان سرتاسر بیابان را فرش میکرد و از پشت پنجره برق کم نور ایستگاه های کوچک ویسکانسین که از مقابل ما رد می‌شدند، ناگهان روح تازه‌ای که بکر و سرد بود به هوا دمیده می‌شد. وقتی بعد از شام از راه روهای سرد قطار برمیگشتیم این هوا را با نفس‌های عمیق به سینه میکشیدیم و به مدت یک ساعت شگفت به یگانگی خودمان با این سرزمین آگاه بودیم و بعد بار دیگر به شکل نامحسوس در آن حل می شدیم. غرب مرکزی من این است، نگندمزارها و چمنزارها یا شهرهای گم شده غرب مرکزی من این است، نگندم و چمنزارها یا شهرهای گم شده قرب من همین قطارهای یخ زده و لرزانش است که به جوانی هم برمی گردد. قرب من چراغهای خیابان و زنگوله های سورتمه در تاریکی یخبندان است و سایه حلقه های گلی که با نور پنجرههای روشن روی برف می افتاد. من جزی از اینها هستم. کمی دلخور از انزمستان های طولانی و کمی رازی از بزرگ شدن در خانه کاروی در شهری که سالیان سال است که خانه ها به اسم خانواده ها خانده می شود. حالا می بینم که این داستان قصه غرب است تام و گتسبی دیزی و جردن و من همگی از غرب بودیم و شاید همه کم و کاستی داشتیم که در نهان نمیگذاشت با زندگی شرق خوب گیریم شرق حتی آن موقع که مرا به هیجان می آورد حتی وقتی که فهمیدم چه برتری نسبت به شهرهای بیحال و گلگ و شاد و ورم کرده آن سوی رود اوهایو دارد شهرهایی که از سوال و جواب کردنشان تنها بچه ها و پیرها معاف بودند شرق همیشه برایم هم کیفیت کج و معوجی داشت بخصوص وست اگ هنوز در عجیب ترین رؤیاهایم ظاهر می شود آن را مثل صحنه شبی در نقاشی های الگرکو می بینم صدها خانه که هم آشنایند و هم ناآشنا زیر آسمان کوتاه و کبود و ماه بی فروغ غوطه کردند. در قسمت جلو، چهار مرد موقر شلوار پوش را در پیاده رو می بینم که دارند یک زن مست از حال رفته را که لباس مهمانی سفیدی به تن دارد روی برانکار می برند. دست زن که از کنار برانکار آویزان شده با جواهراتی که تلعلوی سرد دارند. مردها به آرامی جلوی در خانه می پیچند که البته خانه زن نیست اما هیچ کس نام زن را نمی داند و هیچ کس هم به آن اهمیت نمیدهد. بعد از مرگ گتسوی شرق برایم بدل به مکان اشباه شد به قدری کج و معوج شد که دیگر چشمانم قدرت اصلاح آن را نداشت به همین خاطر وقتی دود کبود برک های خشک آتش گرفته در هوا پیچیده بود و باد زیر لباس های شسته خیس میچرخید و آنها را منجمد میکرد، تصمیم گرفتم به شهرم برگردم اما قبل از رفتن باید کاری را به پایان می رسندم. کار بی خود و ناخوشایندی بود که شاید هم بهتر بود همینطور رهایش کنم. اما میخواستم همه چیز را منظم و مرتب پشت سر بگذارم و بروم. نمیخواستم اجازه دهم آن دریای پایین دست رفت و رو به ریخت و پاش مرا انجام دهد. جردن بیکر را دیدم و درباره آنچه که بینمان در این مدت پیش آمده بود حرف زدم. و بعد آنچه که برایم اتفاق افتاده بود را توضیح دادم و او تمام مدت در صندلی بزرگی لم داده بود و گوش می کرد. لباس گلف پوشیده بود و من یادم آمد که الان شبیه یکی از عکسهای خوبش شده است. چانهاش را سرخوشانه کمی بالا گرفته بود و موهایش رنگ برگهای پاییزی بود و صورتش مثل دستگشهای بی انگشتی که روی دامنش افتاده بود تهرنگ قهوه ای داشت. وقتی حرفایم تمام شد، بدون هیچ اظهار نظری گفت که با مرد دیگری نامزد کرده است. به حرفش شک داشتم، هرچند همیشه چندین نفر دوربرش بودند که با یک اشاره سر میتوانست با آنها ازدواج کند، اما تظاهر کردم که غافلگیر شدم. یک دقیقه صبر کردم که نکند اشتباه تصمیم بگیرم و بعد به همه چیز از اول تا آخر فکر کردم، و زود بلند شدم که خداحافظی کنم جردن ناگهان گفت: «تو با من به هم زدی پشت تلفن این کارو کردی الان دیگه عین خیالم نیست این قضیه برام یک تجربه جدید بود و بعدش تا مدت ها منگ بودم. با هم دست دادیم اضافه کرد: راستی یادت میاد یه بار درباره رانندگی حرف میزدیم؟ نه خیلی. گفتی رانندهی بعد تا وقتی به تور یه راننده بعد دیگه نخورده در امانه. خب، من به یه راننده بعد دیگه برخوردم. مگه نه؟ منظورم اینه که از بیدقتی خودم بود کمچین فکری در مورد تو کردم. فکر کردم آدم بیشیل پیله با شرفی هستی و فکر کردم تو دلت به این افتخار میکنی. گفتم من سی سالمه. پنج سال بزرگتر از اونی که به خودم دروغ بگم و اسمشو بذارم شرف. جوابی نداد. اصبانی و هنوز هم کمی عاشق و از ته دل متاسف آمدم بیرون اواخر اکتبر یک روز اصر تام بیوکنن را دیدم چند قدم جلوتر از من در خیابان پنجم داشت با همان حالت تجاوزگرانش راه میرفت دستهایش کمی با بدنش فاصله داشت انگار بخواهد هر مزاحمی را از سر راه بردارد سرش سارا تیز به این طرف و آن طرف میچرخید تا خودش را با چشم‌های بی‌قرارش هماهنگ کند همین که سرعت قدم‌هایم را کم کردم که از او جلو نزنم ایستاد و با اخم در ویترین یک مغازه جواهر فروشی دقیق شد مرا دید و به عقب برگشت و دست‌هایش را دراز کرد آ چی چته نیک نمیخوای با من دست بدی نه نمیخوام میدونی دربارت چی فکر می‌کنم سرعت گفت خال شدی نی پاک خال شدی نمیفهمم چته گفتم اون روز بعد از ظهر چی به ویلسون گفتی بدون کلمه‌ای حرف به من خیره شد و فهمیدم که در مورد آن ساعت‌های گم ی ویلسون درست حدس زده بودم خواستم بروم که یک قدم طرفم آمد و بازویم را چنگ زد و گفت حقیقتو گفتم ما داشتیم آماده می شدیم بریم که اومد دم در و وقتی گفتم بهش بگید خونه نیستیم میخواست به زور بیاد بالا اون دیوونه شده بود که اگه بهش نمیگفتم گفتم صاحب ماشین کیه منو میکشت. تمام تموم مدتی که تو خونه بود دستش تو جیبش رو هفتیر بود ناگاه حرفش رو قطع کرد بعد ادامه داد تازه چه اشکالی داره گفته به شما؟ او یارو حقش بود اون قاپ زیره بود قاپ دیزیرم همینطور. ولی یه آدم بی‌رحمی بود. نامرد مرتلو این سگ زیر گرفت و ترمز نکرد. چیزی نمی‌توانستم بگویم به جز این حقیقت تمام عیار که این حرفش درست نبود. و اگه فکر می‌کنی من تو این قضیه اذیت نشدم پس اینو گوش کن. وقتی رفتم که اون رو پس بدم و اون قوطی بیسکویتای سگا رو گنج دیدم نشستم و اینه یه بچه زار زدم. خیلی وحشتناک بود. نمی توانستم او را ببخشم یا کارش را قبول کنم اما دیدم کاری که کرده از نظر خودش موجه است این قضیه در هم و بر هم بود و البته کمی سهلنگارانه تام و دیزی آدم های سهلنگاری بودند همه چیز را به هم می ریختند و پخش و پلا می کردند و یک چیز دیگر خلق می کردند و بعد خود را عقب می کشیدند و پشت پولشان یا بی خیالی بی حد و حسرشان یا هر چیزی که آنها را کنار هم نگه داشته بود قایم می شدند و می گذاشتند دیگران گند کاری آنها را پاک کنند. با تام دست دادم، احمقانه بود که دست ندهم چون ناگهان حس کردم با یک بچه حرف می زنم. بعد خلاصی از دود رنجی شهرستانی من رفت داخل مغازه جواهر فروشی تا یک گردم بند مروارید یا شاید هم یک جفت دکمه سرده است بخرد. وقتی وست اگرا ترک می کردم خانه گتسپی هنوز خالی بود و چمنهای خانش به بلندی چمنهای من شده بود. یکی از راننده های تاکسی ده کده بود که هر وقت جلوی خانه گتسپی رد می امکان نداشت، لحظه توقف نکند، و اینجا را به مسافرانش نشان ندهد شاید همان راننده بود که شب تصادف دیزی و گتسبی را به ایست. شاید همان راننده بود که شب تصادف دیزی و گتسبی را به ایست ارسنده بود. شاید هم داشت از خودش داستانی سرهم میکرد. نمی خواستم این داستان را بشنوم. برای همین وقتی از قطار پیاده می شدم هیچ وقت سوار تاکسی او نمی شدم، شنبه شبهایم را در نیویورک می چون هنوز در حال و هوای آن مهمانی های پر نور و سرور و مبهود کننده گتس بودم و آن چنان برایم زنده بود که حتی صدای موسیقی و خنده های مهمانها را به شکلی ضعیف از باغ خانهش می‌شنیدم همچنین صدای رفت و آمد ماشینها در گذرگاه خانهش، یک شب هم صدای ماشینی واقعی به گوشم خورد و نور چراخهایش را دیدم که جلوی پله های در ورودیاش توقف کرد. اما از جایم بلند نشدم که سرگوشی آب بدهم. شاید آخرین مهمانی بود که از آن طرف دنیا آمده بود و خبر نداشت که مهمانی تمام شده. شب آخر، وقتی چمدانم را بسته بودم و ماشینم را هم به خاربار فروش فروخته بودم، یک بار دیگر، جلوی خانه درهم و برهم گتس رفتم پسر بچه ای با خط خرچنگور باغه روی پله های سفید با پار آجر یک کلمه زشت نوشته بود زیر نور محتاب با کف کفش پاکش کردم بعد به سمت ساحل رفتم و روی شنها ولو شدم حالا بیشتر مغازه های ساحلی بسته بودند و چراغی دیده نمیشد به جز سوسوی لرزان نور یک قایق مسافربری در آن سوی تنگ. هرچه ماه بالاتر میآمد خانه های بیخود سربرآورده ساحل بیشتر در سیاهی شب ذوق میشدند تا اینکه کم کم متوجه این جزیره قدیمی شدم که در چشم دریانوردان هلندی چون گلی شکفته شده بود. پهنه سرسبز و تر و تازه از دنیای جدید. هرچند درختانی که راهشان به خانه گتسبی ختم میشد ناپدید شده بودند و یک بار دیگر دل به نجواهایی سپرده بودند که آخرین و بزرگترین رؤیاهای کل بشریت بود. در لحظه ناب و رازآلود، بیشک بشر در حضور این غار نفسش را حبس کرده بود و به تعملی هنری وادار شده بود. در صورتی که نه آن را می فهمد و نه می خواست. آن هم برای آخرین بار در تاریخ چهره به چهره چیزی که با ظرفیت شگفت زدگیش تناسب داشت. همونطور که آنجا نشسته بودم و غرق تفکر در مورد این دنیای قدیمی ناشناخته بودم یاد شگفت زدگی آن شب گتس افتادم که برای اولین بار آن نور سبز را در انتهای اسکله دیزی کشف کرده بود راه درازی را برای دیدن این چراغ سبز آمده بود برای دیدن این چمنهای کبود و باید رویایش را آنقدر نزدیک میدید که به چنگ نیاوردنش بعید به نظر می‌رسید نمیدانست که رویایش پشت سر اوست جایی در تاریکی عظیم آن سوی شهر آنجا که دشت های تاریک جمهوری زیر ظلمت شب موج بر داشتند گتسوی به آن نور سبز ایمان داشت به آینده تربناکی که سال به سال خودش را از ما دور و دورتر می کند آینده از چنگ ما گریخته اما مهم نیست فردا تومتر می دویم. دست را بیشتر دراز می تا سر انجام در یک صبح زیبا همچنان می و مانند غایخ هایی خلاف جریان آب همیشه به گذشته رانده می